علم دین علم دانش علم سیاست علم اقتصاد علم پزشکی همه علوم متداول اون روز را هر یکی معلمی مخصوصی داشتند و حساب کنید هر معلمی در ما چقدر خرجش می با زن و بچهش و چقدر برای تأشیل یک شاهزاده پادشاه می باست خرج کنه همینطور دسته دیگری که سواد لازم داشتن موبدان و موبدزادگان بودند که اون هم با هزینه هنگفت گفت میبایستی به موبدزادگان درس دینی داده بشه که موقعی که به مرحله موبدی میرسن بتونن بشر را یا مردم زیردست را ارشاد کنند. پس این دو دسته میتونستن سواددار بشن بقیه مردم فقط حساب روزانه حالا منها و جمع و حالا شاید ضرب و حالا آیا تقسیم اینا بلد بودن در قدیم اونم معلوم نیست ولی در هر صورت از روی چطکه و این وسایلی که بعدن پیش آمد اونها حسابشون از روی این انجام میدادند. ولی برای دارشمندان برای موبدان بزرگ همه اینها اون زمان وقتی که میخواستم بنویسن گفتیم کاغذ نبود روی چرمگاه یا چرم آهو یا حتی در مصر روی برگ پافیروس که یه جور نهی بود یا مثلا در عربستان روی کتف شطر روی پوست درخت یا مثلا در ایران قدیم روی سنگ کو میکندن که باقی بمونه پس کتاب در نزده همه نبود و بیشتر مردم موبد آنچه که میگفت دوباره تکرار میکردن مثل ما که در دبستان و مدرسه بودیم سابق یکی می میگفت ما دوباره پس میگفتیم یاد میگرفتیم و علم سینه به سینه بود و دو جور علم در قدیم بود یکی آسنود خرد یکی گوش سرود خرد آسنود خرد یعنی خرد و دانشی که طبیعی بود قریزی بود علم قریزی علم طبیعی یکی گوش سرود خرد یعنی علمی که از راه سرود شدن در گوش آدم یاد میگیره گوش سرود یعنی سرود شده در گوش که بعدا در اسلام به نام علم معقول و منقول گفت علم معقول یعنی آسنود خرد علم طبیعی علم منقول یعنی نقل شده در گوش یعنی گوش سرود و بیشتر علم ها همین علم گوش سرود بود وقتی که شهرت عشود در تشت در اطراب پراکنده شد از هندوستان یک نفر برحمن به نام چنگ هاچ که در هندوستان به نام شنگ چاریه معروفه این دان... یک دانشمند خیلی معروفی بود آمد به ایران اون موقع در بلخ بود عشود در در پای تخت گشتاز بود که از راه پاکستان افغانستان اینا آسون اومدنش بعد از اینکه با مباحثه کرد بعد دین عشو زرتوش را پذیرو و یک نسخه از اوستا را دادند که با خود ببره هندوستان یک نفرم از یونان به نام توتیانوس حکیم او هم آوازه شهرت عشوزرتوش را شنید و او هم به ایران آمد و پس از مباحثه با عشوزرتوش یک نسخه دیگر را با خود برد به یونان بعدا به دستور عشوزرتوش شاگشتاس آمد و تمام تعالیم دینی متداول، زرتشت ابغا کرده بود روی دوازده هزار جلد گاو دباقی شده یعنی گا با خط زر نوشتند در سه نسخه یک نسخه را گذاشتند در آتشکده آدربرزین مر در خراسان یک نسخه در آتشکده آذرگشاست در آذربایجان و یک نسخه در تخت جمشید در کتابخانه تخت جمشید اما این کتابا چی بودند اشو زرتشت کردم وقتی که به پیامبری برگزیده شد کسی از زرتشت نپرسید دزد چکارش کنیم جانی یا زانی را چجور جور تنبیه کنیم اگرم میپرسید اشو در توش میفرمود من نیامدم حکومت در حکومت ایجاد کنم من آمدم راه بهتر بهترزیستن را به شما یاد میدم پس مملکت ایران در اون زمان پادشاه داشت قانون داشت تمدن داشت و اشو در توش لازم نبود به مردم بگه چه جور لباس بپوشید زنها چه لباس بپوشند؟ مردها چه لباس بپوشند؟ چه چیز حرامه چه چیز حلاله نمیدونم فلون نمازی که میخواید بخونید چی بخوانید، اینها مرسوم بود در اون زمان یا کار در گذشتگان و مرده ها چجور انجام بدید اینها میگفت تمام قوانین پوری و دکیشان یعنی مذهب پیش از من اینها را با عقل و خرد بسنجید و اون که با عقل و خرد شما برابر است بپذیرید و اونی که نیست رد کنید از این جهت بسیاری از کارهایی که ما داریم و بعدنم به نام کتابهای وندیداد و یشتاب و اینا آوری شد اینها قوانینی بودند که پیش از زرتشت در ایران متداول بود و اینهایی که زرتشتی شده بودند با تطبیق دادن اون را با عقل و خرد وارد های دینی زرتشتیان کردند. پس اشودرتش چه کار مهم کرد؟ آنچه خوب و پسندیده و عالی بود در زمان خودش ابقا کرد، باقی گذاشت. آنچه بد بود از بین برد. مثل در قدیم قربانی برای مهریزد خیلی متداول بود. حتی گا قربانی میکردن گوسمندان زیاد قربانی میکردن و اگر در یشت ها نگاه کنید که تاریخ جغرافیا و اینهای پیش از در داشته میگه بعضی پادشاهان هزاران گاو و اسب و اینها قربانی مهریزد و نهید و اینا میکردن. ولی عشو توش گفت، هیچ وقت اهورا مزدا و امشاسپندان و ایزدان و روان گذشتگان از کشتن حیوانات و ریختن خون برای خوشنودی آنها خوشنود نمیشن دست از قربانی بردارید ولی ما در ایران چون با اکثریت مسلمان زندگی کرد می کردیم و مسلمان قربانی را یکی از کارهای مهم می و عید قربان داشتند، خواه نخوا؟ ما در ایران نتوانستیم کاملا این را ترک کنیم ولی در هندوستان کاملا ترک کردند. به می دونید اصلا برای خوشنودی احرامزده و ایزدان و امشاستندان روان در گذشتگان هیچ وقت سری گوسبن نمی برن. گوشت میخرن برای سالوگ و همبالو اینا ولی سر گوسمت نمی برای خاطر خدا و اینه که بعضی از اشخاص در ایران هنوز هم هن مثلا همین ماه پیش یکی از خانوم ها آمد پلومن گفت که من میخوام عروس بیارم خونه و میخوام وقتی که در خونه رسید گوسمت جلوش سر ببرم آیا این کار بکنم یا نه گفتم نه زردوش قدغن کرد تو اگه میخوای خیلی تو دوست داشته باشی آینده هی فک و فرمون مکن دستور بشنده مرافا دعوا نکنید با هم خوب و خوش باشید این بهترین قربانی برای اوه پس عشو در توشت قربانی را قدغن کرد عقیده به سهر و جادو و بط پرستی و پری پرستی و این جن پرستی و اینها را قدقن کرد و اون که آورد یکتا پرستی بود و روش یکتا پرستی این است که بعدا می بینیم این قوانین گذشته ای که با مذهب دردشتی تطبیق داده شد و تاریخ و جغرافی و علوم ایرانیان قدیم به صورت یعشتا و تمام یعشتا مال قبل از دردشت فقط ارمزیش هر دینی یک اصولی داره و یک فروعی اصول دین همین اصل دینه که ابدی و همیشگی باید باشه ولی فروع دین که برای انجام تشریفات لازمه برای انجام اصل دینه این بهش میگن فرع دین مثلا یکی از اصول دین خداشناسیه فروش نمازه طرز نمازه طرز دست نماز گرفتنه طرز ایستادنه اینها فروع فرو دینه پس فرو دین قوانینی نیست که پیغمبر برای یک مردم یک زمانی و یک مکانی که خودش متولد شده و ضمن آداب و رسوم قبل از اونها در رگ و پوست این مردم ها جایگزین شده این فروع دینه که پیغمبر برای زمان معینی تعیین کرده و همیشگی نیست فروع دین با تغییر زمان و مکان و حتی پیشرفت فکر باید عوض بشه و اگر عوض نمیشه لطمه به اصول دین هم میزنه پس فروع دین قوانین و آداب و است که از گاه تولد تا بعد از مرگ بین یک ملتی رواج داره مثلا ما یک زمانی طرز کفن و دفن جور دیگه بود عوض شد تبدیل شد به راه دیگه و اخیرانم ما تغییر دادیم این لطمهی به اصل دین نمیخوره برای که تمام این قوانینی که یا آداب و رسومی که ما برای فروع دین یعنی عقیده داریم روح باقیه و تمام این مراسم برای اینه که ثابت کنیم که روح باقیه و ما این مراسم را برای خاطر روح انجام میدیم حالا اگر این مراسم تغییر کنه لطمهی به اصل عقیده یعنی بقای روح نمیزنه اما راجع به اصول دین زرتشتی ما در پاتت میخوانیم اویگمانم به هستی دادارورمست یعنی من بیگمان هستم که اهورامزدای وجود داره خداوند یکتای وجود داره او وحدین مازدیاسنان. او و بیدن رستاخیز تن پسین بیدن یعنی بودن بودن رستاخیز تن پسین تن پسینم اون آخرین بودیه که بعد از مرگ از هم پاشیده شده دوباره معتقدیم جمع میشه و اون هم در آزمایش آخری پاک و خالص از یک رودی از فلز مذاب رد میشه و تمام آثار گناه در او سوخته میشه و اون طرف اون رود که میرسه پاک و خالص البته اینا مثلی است که ما باید زیر سندان و چکش روزگار اونقدر رد بشیم تا پاک و خالص برگردیم به اصل خودش و بیدن رستاخیز تن پسین و گذشتن از چین و پل یعنی از یک پلی ما باید رد بشیم از این دنیا به اون دنیا همیشه از یک رود به رو از یک طرف رودخانه به طرف دیگر می یک پولی باشه که روش رد بشیم پس از این دنیا به دنیا دیگرم برای فهم ما گفتند یک پلی هست بین این دو دنیا به نام پول چین ود چین ود یعنی توچین کردن یعنی خوب و بد را از هم جدا میکنند و گذشتن از چین پل. و شمار سدوش این سدوش یعنی سه شب اولی که ما تا صبح چارم عقیده داریم صبح چهارم روح در دادگاه پروردگار حاضر میشه محاکمه میشه و سه داور از طرف پروردگار تایی شده مهر و سروش و رشن مهر ترازوی داره در دست و گناهان یک طرف ترازو می‌ذارند سبابها یک طرف و مهریزد نگاه به روح نمی‌کنه فقط اون میزان ترازو رو در دست داره و هر لنگه‌ای که تر شد این عاقبت روح رو تعیین می‌کنه و اگر مساوی شد بهش میگیم برزخ یا همیشگان کرفه مزد و وناه پادفرا ما معتقدیم که هر کار نیکی مزدی داره و هر کار بدی پادفرا جزایی هستی بهشت و دوزخ و نیشتی اهریمن و دیوان یعنی در روز آخرت ما معتقدیم که علاوه بر این که بهشت و دوزخی هست نیستی اهریمن و دیوان یعنی بدی و ناپاکی و منشأ بدی از بین میره و اون وقت سراسر دنیا رو نیکی و خوبی فرا میگیره و فرجام فیروزی سپنتا مینو و شکست گناه مینو و در پایان سپنتا مینو یعنی روح نیکی روح خیر پیروز میشه و انگرمینون یعنی روح شر و ناپاکی و بدی شکست میخوره بین میره حالا برای این این آیات عوستا را به زبان امروز ما توضیح بدیم ما در کتاب دینیمون مینویسیم که اصول دین زرتشتی اول یکتایی و توانایی احورا مزده. دیگر از جاهایی که صفات احورا به خوبی ذکر میکنه اون مزیشته باز همه این یشت و ریشش از گاتای اشودر داشته. میگه هنگامی که تو را در دیده دل نگریستم یعنی پروردگار هنگامی که من تو را با دیده دل نگریستم در اندیشه خود دریافتم که توی سراغاز توی سرانجام توی پدر همه چیز و توی داور دادگر کارهای جهانی میبینیم این هم اصول دین درش مستطره دومین اصول دین ما پیامبره اشدرتشته و وجود دین واه مادی نیست و ما معتقدیم که اهورامزدا مزده اشود در را برگزید و به واسطه الهامی که به او بخشید او را وسیله نجات دادن روح بشر ساخت این عقیده به پیامبران تا حالا سه عقیده مختلف در باره زهور پیامبران در بین ملل مختلف وجود داره ما زردشتیان و اسلام و یهود معتقدند که خداوند یک شخصی که قابلیت داره و حاضر در رای حق و حقیقت کشته بشه و فهم و عقل و هوش و اینهاش به اندازهی که میتونه حقایق را درک کنه او را انتخاب میکنه به عنوان رهبری مردم جهان ولی مسیحیان و هندیها عقیده دیگری دارند هندیها معتقدند که خداوند در وجود آدمی نزول میکنه و به نام اوتار معروفه اوتار یعنی روح خدا در جسم آدم برای رهبری بشر پس وقتی گفتند فلان اوتار یعنی او خداه خدا رفته تو جسمش پس هندی ها معتقدند کسی از عالمیان و آدمیان به عنوان پیامبری انتخاب نمیشه و خداوند خودش به صورت آدمی در میاد و بشر را راهنمایی نمایی میکنه اما مسیحیان موقعی که مبلغین مسیح در یونان و روم تبلیغ میکردند یونانی ها میگفتند که گای خدایان آسمان آشق دختران رو زمین میشن و از اینها ها به وجود میاد نیم خدا و نیم انسان مثل هرکول هرکول پدرش خدای آسمان بود به نام زیوس و مادرش یک دختر معمولی بود و میگفتند عیسی هم اینجوره پدرش خدای مادرش مریم باکره است. و خودش فرزند خداه این هم یک جوری دیگه توضیح پیامبران پس سه رسالت پیامبران توضیح شده سومین اصول دین ما اشایه احورا مزده بارها در اوستا میگه هرکس کس از عشا کند در هر دو جهان رستگار خواهد شد و از این رو عشو در توش میفرماید عیبو پنتا یو عشه راه یعنی راه رستگاری در جهان یکیست و اون است. حالا عشویی معنی خیلی مبسود و مطروحی داره عشوی یعنی راستی، درستی پارسایی، پرهیزکاری پاکی که اگر خواسته باشیم به زبان امروزه به عربی ترجمه کنیم میشه تغبا و می‌بینید این کسانی که در روزهای جامعه نماز جماعت و اد در دست دارن میگن ما شما را به تقوا توصیه میکنیم تقوا یعنی پریشکاری یعنی پاکی پاکی هم به معنی پاکی عتم و اهمه مثل اینکه تو پاک باش و مداری برادر از کس پاک اینجا پاک باش یعنی ظاهرت پاک باشه و باطنت پاک باشه پس اشویی اگر می به درستی به فارسی ترجمه کنیم یا میتونیم تونیم و پرهیزکاری بگیم یا پاکی ولی پاکی به معنی اهم اشویی دو جنبه داره اشویی ظاهری اشویی باطنی اشویی برونی و اشویی درونی اشویی ظاهری یعنی تنمون پاک باشه لباسمون پاک باشه خونمون پاک باشه کوچه و محلمون پاک باشه و محیط زندگیمون پاک باشه و روی این اصل که ما ایرانیان چه در آین نیاکانمون و چه در فرهنگ نیاکانمون پاکی محیط زیست را مرتب توضیح میکنه و همه به خاطر دارید سابق صبح زود خانم ها از خواب بر میخواستند تمام خونه رو آب و جارو میکردند کوچه و محله را تا اونجای که خونه بود پاکیزه میکردند در نتیجه دیگه محتاج اینکه که رفکر را دولت استخدام کنه و نیمه کاره کاره رو انجام بده خود مردم با سمیمیت و صداقت تمام انجام میدادند و پاکی محیط زیست یعنی آتش و آب و هوا و خاک را پاک نگه می داشتیم چجور آتش را پاک می نگه می داشتن؟ چیزهای دودزا، هیزومه دودزارو رو آتش نمی داشتیم. اگر دود میکرد میگفتیم می گناهه اینه که کسی که سیگار میکشید چپغ میکشید خیلیون میکشید ما نزدیکش نمیرفتیم. میگفتیم این یک گناهی داره مرتکب میشه برای که هوا را آلوده میکنه. آب را پاک ننگ می داشتیم هیچ وقت در قدیم سرچشمه رخت نمی شستن، سرچشمه جای برداشتن آب بود و تازه موقعی که، آب را هم برای شستشوی لباس به کار می بردیم. آب کشیف را بیرون می رو خاک نمی دوباره تو آب و خوشبختانه این پاک نگه آب بعدا اینکه که بعضیها اسلام را پذیرفتن این عقیده وارد مذهب اسلام شد و میگن. آب مهریه حضرت فاطمه است و اگر یک کسی بچه را سر آب وادار کنه ادرار بکنن یک آخونده یک ملای ببینه میگه که خانم این کار نکن آب مهریه حضرت فاطمه است و آلوده میشه گناه همینطور هوا را پاک نگم داشتند خواک را پاک نگم داشتند. و این چیز امروز دنیا مبتلا بشه دنیا تازه میفهمه که پاکی محیط زیست از واجبات بهزیستیه خیلی. پس عشوی ظاهری یعنی این و عشوی باطنی یعنی اندیشه و گفتار و کردار نیک و در گات و در اوستا بارها آمده هر کس اندیشه و گفتار و کردارش نیکست در هر دو جهان در بهشت خواهد بود هر دو جهان یعنی هم در این دنیا و هم در دنیای دیگر این دنیا در نظر پیغمبر ما در نظر نیاکان ما خیلی اهمیت داره این دنیا مزرعه آخرت است. یعنی هر نیکی یا بدی که در این دنیا بکاریم بر و در جهان بعد به ما خواهد رسید. این دنیا خار و زبون و زشت نیست در عوستایس روشباج میخونیم اول تانی بعد روانی اول گیتی بعد مینو تن اهمیت زیاده کسی که تنش درسته عقل درست داره عصب درست داره روحیه درست داره میتونه به همه کاری برسه راستگوی و درست کاری هم از نیروی بدنه ز نیرو بود مرد را راستی ز سستی کجی آید و کاستی پس تن وقتی نیرو و قوی و پاک شد روح و منشم پاک میشه پس اگر تن را اهمیت ندیم و بگیم این تن موقتیه جسم فانی میشه همش فکر روح باشیم این اشتباهه <خصف> یا اگر بگیم این دنیا دنیای فانیه فقط فکر اون دنیا باشیم نه این دنیا خواهیم داشت نه آخرت کسی که در این دنیا وظیفه جسمانی خودش وظیفه اجتماعی خودش وظیفه فردی خودش را درست انجام نده اون دنیا بری از نیکی نخواهد بود. در مذهب ما جای نیکوکاران کاران بهشته پس بهشت یعنی بهترین حالت دیگه در عبستا توضیح نمیده بهشت چجوره زمان ساسانیان وقتی ما زردشیان با یهودی ها و مسیحیت تماس پیدا کردیم دیدیم اونها بهشتشون توضیحاتی داده میشه به جهنم هم توضیحاتی داده میشه اینه که شادروان اردای بیراف هم معمول شد که بره اون دنیا رو ببینه و برگرده و یه چیزی شبیه بهشت جهنم دیگران برای ما هم درست کنه ولی از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده ای کو که به ما گوید راز هیچ کس نمیدونه یکی از شعرها میگه به قدر فهم تو دادن شرح دوزخ را که مار قاشیه و اغرب دوسر دارد اگر خدای بخواهد که بنده آزارد مار و اغرب دوزخ گزندهتر تر دارد ولی نمیدونیم پس ما باید کاری بکنیم که در هر دو جهان در بهشت باشیم یعنی بهترین حالت بهترین باید و کاری نکنیم که در اون دنیا و در این دنیا در دوزخ باشیم یعنی مرحله پست بعد از این ما به بقای روح عقیده داریم و این حقیقتیش که بشر از همان روزهای اولی پی به وجود روح و بقای روح بعد از مرگ برده در زمانی که انسان در غارهای کو زندگی میکرد و بدوی زندگی میکرد شب وقتی میخوابید میدید یه چیزی از سوتنش در میره در اطراف میگرده و دوباره وقتی تو تنش میاد بیدار میشه مردمان اون زمان میگفتن این جانی که بیرون میره ولی بعد دیدن آدمی که خاوه گاهی متشنج میشه بدنش گاهی خورخورد میکنه گاهی پهلو به پهلو میگرده پس گفتند این وجود آدمی تن داره و جان داره ولی اونی که بیرون میره بهش میگن روان یعنی جاری میشه میره بعدا کم کم مرده ها رو به خواب میدیدیم وقتی آدم خوابیده روح پدرش، مادرش، ممسش، بامسش شنا به خوابش میاد و باورش نمیومد که نمیاد که اینا مردن اینها رو زنده تصور میکرد و اینم یکی از علل دیگری شد که معتقد به بقای روح شدیم ولی امروز بشر ثابت کرده که هیچ چیز در دنیا فانی نمیشه مرکب بوده تجزیه میشه حالی به حال دیگر در میاد ولی نابودی در این دنیا معنی نداره این از که کم کم بشر متقاعد شد که بعد از مرگ روحی باقی میمونه و نیاکان ما رو این اساس آمدن گفتند روح ما اول در کالبد جمادات بوده در اونجا تجربیات به دست ورده. بعد وارد کالبد نباتات شده اونجا هم تجربیات به دست ورده و کالبد کالبد را رها کرده بعد وارد کالبد حیوانی شده بعد انسان شده بعد میگیم بعد از این فروهر جذب فروهران در میاییم بعد جذب ایزدان بعد امشاسبندان و معلوم نیست چند هزار سال طول بکشه تا برگردیم به اصل خودمون اینه که شادروان مولوی در مصنبه خودش همین اصل نیاکانش را تکرار کرده و میگه از جمادی مردم و نامی شدم از نما مردم به حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم که مردم مردن کم شدم دفعه دیگر بنیرم از بشر از ملایک سر برارم بال و پر از ملک هم همچنان پران شوم اون چه اندر وم هم آن اون شدم. این این همون فلسفه نیاکانش است که شادروان مولوی این را به شعر روز در آورده. امیدواریم این عقیده در ما باقی بمونه و بدانیم که هر کار نیک یا بدی که کردیم در زندگی بعدی اثر داره اگر کار ما ناقص باشه در مرحله بعد یک موجودی گرچه فروهری یک موجود ناقصی بار میاد اگر میخواید موجود فروهر اشوان باشه فروهر پاکان باشه و در عویستا درود میفرستیم، اون فروهر نیکان و پاکانه نه فروهر بدان اما این روان چیه؟ از روز اول تا حالا انسان اون چی توانسته از کوشیده است؟ تا ببینه آیا انسان وقتی میمیره این روحش چه حالتی پیدا میکنه احتیاج به چه چی چیز داره ولی هنوز کسی پی نبرده یکی از دانشمندان ایرانی میگه روان را ندانم که چیست از آن پیش به بتن راست چیست چرا ماند ان در زمان نجند در این تنگ زندان شود پای بند سرانجامش از تن جدایی چراست گرفتن ره بیوفایی چراست چرا خاک گردد تن پاک ما و از آن پس چه خواهد شدن خاک ما ندانیم مقصود یزدان چه بود از این آفریدنش ارمان چه بود باز یکی دیگر از شعرا میگه ندانیم از این ره کجا می رویم چرا آمدیم و چرا می‌رویم ز اندیشه خوند شد جگرها بشی ولی حل نکردین معما کش از این جهت ملل متنوع هر کسی برای خودشون یک تئوری و فرضیه دارند مثلا بودایی ها میگن این دنیا غیر از شکنجه و آزار چیزی دیگه برای انسان نیست و وقتی زندگی فشارشو میاره یه نوع خودکشی مذهبی میکنن و میگن با این وضع خودکشی دیگه ما آزاد میشیم یک فرقه از هندوها میگن این در دایره تولد و مرگ یا در دایره زاد و مرگ انسان چندین بار باید متولد بشه و سختی روزگار بکشه و بمیره و دوباره متولد بشه و دوباره بمیره تا این مثل وجودش در کوره زندگی و چکش زندگی پاک و خالص بشه و اون وقت به درجه نیروان میرسه نیروان یعنی نیستی پس تا هستی وجود داره شکان هست یک ادعی میگویند مقدر برای پاک شدن وجود ما که چندین بار زنده بشیم و بمیریم و سختی بکشیم تا اینکه بالاخره پاک و خالص بشیم میگن پس برای اینکه چندین بار هی زنده نشیم و نمیریم یک دفعه همه زحمتا را میکشیم میرن ریاضت میکشن سی سال روی پا میستن تمام عمرشون مشغول عبادت و تاعت میشن هزار جوش کنجه به خودشون تحمیل میکنن که میگن این زحماتی که چندین سال، چندین دور زندگی باید بکشیم یه دفعه میکشیم که راحت بشیم پس ما از عالم بعد از مرگ هیچ خبر نداریم کس نامد از آن جهان که تا پرسم از او احوال مسافرین عالم چون شد ولی ما بشر عجیبه یه چیزی که سربسته و مرموزه برای ما ما بیشتر دنبالش میره و این زندگی که واقعی و حقیقی کمتر توجهش بش میکنیم ولی برای مردگان اهمیت فوق العاده زیاد داره. آیا این از چیست؟ از جهالت نیست؟ البته این گونه مراسمی که ما برپا میکنیم همش برای مرده ها نیست مثلا موبد این اوستایی که میخونه گات هاست که خود عشود در توشت برای راهنمای ما بندگان آورده پیغمبران کاری به کفن و دفن و مرده و اینا ندارن اینها میان راه زندگی نیک را به ما نشان بدهند امیدواریم این توجه را داشته باشیم که کمک کردن به زنده ها به مراتب بالاتر از کمک به مرده هاست و به خصوص ما در معتقدیم که صبح چهارم که میشه اون دادگاه پروردگار یا اونچه که در عوستا میگه اون گنج دادارورمز تمام گناهان و ثبابی که میکنیم وارد گنج دادارورمز میشه و صبح چهارم با یک دکمه فشار رو کمپیوتر اعمالمون فورا روشن میشه که آیا چه مقدار ثبابمون بیشتره یا گناهمون بیشتره و میریم یا بهشت یا دوزخ اما بهشت من بارها از کردم صفت عالی به همون طوری که امروز میگیم به بهتر بهترین قدیم میگفتیم به بهتر بهشت مثل انگلیسی گود بهتر best و best انگلیسی و بهشت فارسی هر دو یعنی بهترین حالت که ما این که مه یعنی بزرگ مه مح مهتر مهشت مهشت و ماجستی از این کلمه میاد کم کمتر کمشت قدیم امزا میکردیم کمست فلان یعنی الاحغر صفت عالیه مستر مزشت mas در روستان میگیم مزشتن هم و یعنی بزرگترین و بهترین و ترین پس بهشت در دین زرتشتی توضیح داده نشده اونجا چجوره خوراکی هست برای ما از چه چیز لذت میبریم از چه چیز خوشمون میاد ولی ما بشر از اون جایی که خیال میکنیم مرده ها مثل ما هستن سفره برایشون پهم میکنیم اون چه به نظر ما خوبه به اونها هم پیشکش میکنیم دیگه، کار دیگه از دستمون بر نمیاد پس بهشت یعنی بهترین حالت و عجو در توش در گاتا میفرماید هرکس هر کس اندیشه و گفتار و کردارش نیکست در هر دو جهان در بهشت خواهد بود یعنی بهترین حالت و هم از دو کلم است دوش یعنی بد که گاهی به فارسی باشین می نویسیم دشمن کسی که منشش بده فکرش بده نسبت به ما یا گاهی با جه می نویشیم. دشخیم کسی که خوی و قصد و ارادش نسبت به ما بده پس دش یعنی بعد اخو در عوستا یعنی پایه و مرحله که ما در عوستا می اخوان اشوان روشن گروسمان ما نور رساد یعنی بشود که اخوان اشوان یعنی مراحل اشوان و پاکان نصیب ما گردد پس دوزخم یعنی پایه پست ولی پیامبران وقتی با یک قوم ساده جاهلی روبرو میشن چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشد و این توصیف هایی که در باره بهشت و دوزخ داده شده میبینیم برای فهم و درک ماها آدمهای جاهله به قدر فهم تو دادند شرح دوزخ را که مار قاشیه و اغرب دو سر دارد اگر خدای بخواهد که بنده آزارد ز... مار و اغرب دوزخ گزندهتر دارد ولی ما نمیدونیم امیدواریم در اثر تقبل و تفکر بیشتر در کار زندگی ما سعی کنیم به هم دیگر خدمت کنیم. در روستان میگه اشتا احمایی یهمایی اشتا کهمایتی خوشبختی از آن کجیش که در پی خوشبختی دیگران باشد. پس ودیفی ما کمک و یاری به یک دیگره. این است که تمام پیامبران اولالان دستور دادند. قسمتی از مال شخص باید در راه انفاق خیر و خیرات کمک دیگران صرف شود و این مراسمی که امروز داریم پایش بر بقای روحه یعنی ما معتقدیم که روحی باقی میماند و این عوستاییم که میخوانیم گرچه برای درکو و فهم زندگی واقعی است حالا میگیم برای ارواح پیام خدا درگذشتگانم میخوانیم ولی قسمت امدهش برای ما زنده هاست اولا ما میاییم به صاحب روان تشلیت عرض میکنیم هم دیگر را میبینیم زمنن متوجه میشیم که ما هم یک روزی خواهیم مرد اگر پنجاه سال عمر خود را در هرس و تما و مال صرف کردیم، این پنجاه سال بعد دیگه توری کنیم که وسائل خوشبختی خودمون در اون دنیا فراهم کنیم باز هم اگر موفق نشدیم و مردیم اگر بچه هامون مبلغی از پول ما را به راه خیر و خیرات برای آمرزش روان ما خرج کنند و اگر این عقیده باز نبود کسی کار خوب نمیکرد، پس این کارهایی که برای درگذشتگان میکنیم بیشتر برای ما زنده هاست تا پند و اندرز بگیریم و خیال نکنیم همه می میرند غیر از ما اون وقت است که گاه متنبه میشیم، متوجه میشیم و به دستگیری یک دیگر برمی میاییم. برای که خوشبختی از آن کسیست که در پی خوشبختی دیگران براید امروز راجع آخرین بخش اصول دین زردشتیان می خواهم در حضور حضرت محترم مطالب عرض کنم کلمه رستاخیز از دو کلمه درست شده رستا که در اوستا ایریستا یعنی درگذشته مرده تا ما اینکه میگیم اریستانا و یعنی روان درگذشتگان خیزم یعنی برپاشدن شدن پس رستاخیز یعنی برپاشدن مردگان این موضوع یه قدری مشکل فهمش اگر حواستون جمع نباشه درست متوجه نخواهید شد هر ملتی که معتقدند که این جهان مخلوطی است از خیر و شر نیک و بد جبر و اختیار باید معتقد باشین که یک روزی خیر بر شر غلبه پیدا میکنه یک روزی بدی شکست میخوره و نیکی سراسر دنیا را فرا خواهد گرفت حالا این موضوع از کجا پیش آمد بشر مخصوصا پیروان مذاهب توهیدی بزرگ معتقدیم که روح انسان اول در ملکوت آسمانی بوده که ما بش میگیم عالم فروهران و افلاتون هم که یکی از پیروان دین زرتشتی بود این عالم فروهران را به نام مسله افلاتون ذکر میکنه و در کتابش نویسه و کاملا همون موضوعی که در فرورد ذکر میکنه افلاتون هم در کتاب خودش آورده مذاهب یهود و مسیحیت و اسلام معتقدند که اول آدم در ملکوت آسمانی بود در بهشت برین بود فقط به واسطه نافرمانی از خدا و خوردن اون میوه ممنوعه خداوند او را به این دنیا فرستاد که با عرق جوین و کد یمین در اثر اون نافرمانی که کرده زندگی بکنه و تمام عمرش گرفتار درد و رنج و غم و بدبختی و بیچارگی بشه پس به واسطه نافرمانی انسان گرفتار این دنیا شده و در این سه مذاهب میگه نه فقط اون آدم باید تنبیه بشه میگه برید و هفت پشتتن به واسطه این نافرمانی که کردی تنبیه بشن ولی فرهنگ ما ایرانیان و دین زرتشتی میگه اول انسان در عالم فروهران بوده بعد از این که خداوند روح جمادات و نباتات و حیوانات را در کالبد مادی وارد کرد بفروهر انسان گفت ای فروهر آدمی آیا مایلی همیشه در جوار من راحت و آسوده بمانی یا اینکه میخوایی بری کالبد مادی بگیری با کشش نفسانی مبارزه کنی و بعد از شکست بدی فاتح و فیروز به سوی من برگردی یعنی انسان مختار شد که یا در ملکوت آسمانی باقی بمونه یا بیاد به این دنیا مادی و کالبد مادی بگیره و انسان میگه من میخوام وارد دنیا مادی بشم کالبد مادی بگیرم و با کشش های نفسانی و حوث های شیطانی مبارزه کنم و فاتح و پیروز به سوی تو برگردم پس چا این شر و بدی وجود داره قیامت پیش نخواهد آمد رستاخیز نخواهد شد زمنا کلمه قیامت هم یعنی برپا شدن از قیام قوام معیوق یعنی برپا شدن حالا پس چهار مذهب توحیدی بزرگ یعنی زرتشتی یهود مسیحی و اسلام معتقدیم که این دنیا مخلوطی است از قوای شیطانی و رحمانی قوای خیر و قوای شر و تمام این چار مذهب یک نوع ثنبی هستند ولی نه ثنوی خدایی همه معتقدیم یک خدا داریم ولی ثنبی اخلاقی هستیم هر مذهبی که معتقد به دو نیروی متزاده ثنوی است برای اینکه مرتب مردم را توصیه می کنند که از شیطان فرار کنه گوش برف شیطان نکنه بیایید گوش حرف رحمان رو خدا کنید و این خودش یک نوع سنوی است گرچه فقط ما را متهم می به سنوییت ولی من میگویم این چار مذهب مذهب توحیدی هستند خدا را یکی می دونند ولی سنوی هستند اون هم سنوی فلسفی سنوی اخلاقی برای که اگر همه چیز این دنیا را نبول کنیم که خدا داده ما می باستی در برابر میکروب، ویروس، قارچ‌های سمی، حشرات موزیه، حیوانات درنده، زلزله، آتش هیچ مقاومتی نکنیم و اگر این کار میکردیم آیا ما بشر زنده میموندیم پس فلسفه به ما میگوید اون که برای شما بده از خود دور کنید و یک نوع سنبیست و در آخر کار هم هر مذهبی که معتقد به دادگاه نهایی بعد از مرگه و اونجا گناه و سبب سنجیده میشه یعنی در اونجا معلوم میشه که کی گوش حرف خدا کرده و کی گوش حرف شیطان اگر گوش حرف خدا کرده بیشتر کارهاش میره بهشت اگر گوش حرف شیطان کرد میره دوزخ جهنم و در تمام این چهار مذهب این بهشت و دوزخ هست یعنی گوش حرف شیطان نکنید گوش حرف خدا بکنید پس این نوع مذهبی که معتقدیم یک روزی عامل خیر بر شر قلب پیدا میکنه اون روز را ما روز رستاخیز میگیم اما چجور مرد زنده میشه در اول اصلا این فلسفه دین زرتشتی است این عقیده که بعدا در زمان آزادی یهودیان به وسیله کوروش در بابل این عقیده وارد مذهب مسیحیت شد وارد مذهب, مذهب یهود شد از یهود رسید به مسیحیت و رسید به اسلام بعدا در اول در فرهنگ ایرانی رستاخیز رستاخیز روح بود نه رستاخیز جسمی یعنی در اول ما عقیده به رستاخیز تن پسین نداشتیم رستاخیز آخرین کار بود نداشتیم ولی کم کم فلسفه پیش آمد و فلسفه گفت انسان در این دنیا وقتی که بدی میکنه بیشتر اون بدی به فرمان جسمه روح که پاک و خالص از این ملکوت آسمانی آمده ولی این جسم بوده که به روح دستور داده که این کار بد بکن پس چرا جسم نباید تنبیه بشه و بیچار روح باید بعد از مر فقط بهش دوزخ بره پس لازمش این است که جسمم روزی تنبیه بشه و اینه که این چهار مذهب معتقدیم که بعد از اینکه که روح به نسبت گناهی که کرده در جهنم میمونه یک روزی آزاد خواهد شد و اون جسمش چهار انصرش در هر جا پراکنده شده به فرمان خدا دوباره جمع میشه و دوباره اون آدم اولیه درست میکنه کم کم در زمان ساسانیان باز ما این را از یهودی ها و مسیح ها گرفتیم این رستاخیز تن پسین و در کتاب پهلوی و قسمت پتت میگه که بله اون تن پسین ما یعنی آخرین اجزای وجود ما باز درست میشه اما بعضی مذاهب معتقدن وقتی یک روحی گناهکاره تا آباد در دوزه خواهد ماند. ولی باز یک فرهنگ ما یه قدری با انصافتر فکر کرده گفته ما در روی این زمین وقتی یه نفر دزدی کرد میگه دو سال زندان چهار سال زندان ده سال زندان ولی تا عبدالآباد این تا ام داره که این برای جوزیگاه بعد گرفتار زندان نباید بشه پس انسانم بعد از مرگ درسته که کار بدش بیشتر از کار خوبش بوده ولی کار خوبم کرده چرا اینی که یک مسخال گناه بیشتر باشه تا عبدالآباد در دوزخ بمونه اینکه که باز در عوستای پنام ستایش میخونیم یعنی در پایان بوجید یعنی نجات میدهد از بوختن میاد در پایان پروردگار نجات میدهد دروندان یعنی گناکاران را از دوزخ باز هم در یکی از کتاب های پهلوی البته این کتاب های پهلوی بدبختانه درست افکار مردمان زمان اشکانیان و ساسانیان را که مخلوطی از عقاید مهرپرستی و زروانپرستی و پرستی و مسیحیت و یهود بوده اینها را مخلوط کرده و میبینیم که بسیاری از این عقاید اونها را مردم اون زمان پسندیدند و دانشمندان ما هم در کتاب خودشون ذکر کردن و میگه که بعد از اینکه که تازه اینهایی که از دوزخ جدا شدن بیرون آمدن این جرم از گناه و ناپاکی تو تنشونه بعد باید از یک رودخانه ای از فلز مذاب رد بشن و آخرین ذره گناه و ناپاکی وجودشون سوخته بشه و اون طرف رودخانه فلز مذاب هرکی اون طرف رسید دیگه پاک و خالص و اشوه و تا آباد در خوشی و خوشبختی خواهد گیرد اما این زندگی بعد از رستاخیز باز چهجوره در یسنای نهم میگه در اونجا بعد از این نه گرم است و نه سرد، نه درد است و رنج و مرض و ناخوشی و مرگ نه حسادت است و نه ظلم و بیدادی و سراسر دنیا نیکی و خوبی و خوشی و عذر و داد فرا خواهد گرفت البته این آخرین امید بشره اینها فرضیههایی که هر قومی به وسیله دانشمندانشون آغازو انجام جهان بیخبریم اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است ولی فعلا کسی بهتر از این تئوری یا فضیه درست نکرده که ما بپردازیم به اون تئوری و اینست که تمام این مذاهب چارگانه به مبده و معاد یعنی چه جور ما از اون کدوم عالمی بودیم و آمدیم تو این دنیا مبده اون کجا بود و معاد یعنی آخرین جایی که برمیگردیم کجاست در گاتا هیچ ذکری از اون نمیشه ولی گاتا ذکر میکنه روزی میشه که شر مغلوب بدی میشه نیکی میشه ولی نمیگه نابود میشه چون اشودرتوش معتقده که از جانب خدا دو نیروی متضاد گرچه به نظر ما هست ولی او این را دو گوهر همزاد میخونه که یکی سپنتا مینو یعنی اون چه اندیشه آدمی نیک تصور میکنه یکی انگرامین اینو اون چه اندیشه آدمی بد تصور میکنه پس این دو نیرو تا ماده هست این دو نیرو هم با هم هستند که ما اینکه الان علمای فیزیک و شیمی میگن هر ذره اتمی که در این دنیا هست دو نیروی متضاد یکی هسته مرکزی پروتون داره گویهای های مانند دورش میگردن الکترون و این یکی قوه جاذبه داره اونها قوه دافعه دارن فرار میکنن و اون جایی که این دو قوه فرار جاذبه و دافعه خونسا میشه اینها دور اون هسته مرکزی میگیرن همینطور زمین ما و ماه ماه کوچیکتر از زمینه ماه 49 مرتبه از زمین ما کچکتره از زمین ما میتونه ماه را دوباره ببلعه ولی ماه با قوی فرار و دافعه داره از زمین فرار میکنه و اون جایی که جرم ماه و نیروی که فرارش با نیروی جاذبه زمین خنثا میشه سیر دبرانی میکنه همینطور طور که دور خورشید میگردن اینها هم به این دو نیرو دارن کار میکنن در برق دو نیروی مثبت و منفیه باز نیروی تز و آنتی تزه. جسم و روحه ماده و انرژیه و حتی امروز میگن ماده یعنی انرژی و حرارت و نور متراکمه که وقتی اتم را شگافتیم از چی بیرون میاد مقدار زیادی نور و حرارت و انرژی پس اون انرژی اصلی همون روحیه که از ملکوت آسمانی آمد وارد ماده شد و گرفتار شد محدود شد و دوباره اگر آزاد بشه مقدار زیادی نیرو و حرارت و انرژی به وجود میاد البته این بسته به دانشمندانی است که در آینده توضیح بدن که منظورش از مبدع و معاد انسان چیه؟ امیدواریم فرضیه بهتر و عالیتر اگر فرض شد در این دنیا ما باید بپذیریم زیرا ما بعد از اهورامزدا مزدا خرد را میپذیریم اول ارمز بعد وهمن بعد اردیبهشت. پس ما همیشه باید دنبال خرد بریم و هر حرفی که خردمندان میزنند باید با اندیشه نیک با فکر و تعمق در آن بنگریم و آنگاه میان نیک و بد را خود تمیز دهیم به طوری که خود شادروان فردوسی بعد از اینکه در مده پروردگار صحبت میکنه بعد از این در مده خرد میگه خرد افسر شهریاران بود خرد زیور نامداران بود خرد رهنما و خرد دلگشا خرد دست گیرد به هر دو سرای هم در این دنیا و هم در سرای دیگر خردمند شاد و خرم خواهد بود پس اشوی در با وجودی که خداوند را فرمود یکیه ولی هر کسی از زن خود شد یار او و از درون او نجست راه او و هر اسمی که رو خدا می‌گذاریم ما میگذاریم یک قومی بعضی صفتی که ما بد میدونیم او خوب میدونه پس چون اون صفت را خوب میدونه به خدای خودش میده و خیال میکنه خدا هم همین صفت داره اینه که این فاصله مذاهب را خودمون زیاد کردیم و درست کردیم. در مذهب زرتوشت هیچ وقت نمیگه خدا مرده ولی میبینیم این مذاهب سامی از جمله مسیحیا میگن ای پدر ما که در آسمانی ولی هشو زرتشت وقتی زهور فرمود گفت برای که بشر بفهمه فرمود خدا چون پدری ما را بیافرین و چون مادری ما را بزرگ کرد یعنی خدا هم سمت پدری داره هم مادری و اینه که در دین زرتشتی صفاتی که به خدا داریم شش شیشتا صفت مختص پروردگاره و این صفات را بعدا به نام امشاس خوانده شد اولش وهومن یا بهمن به که در قدیم یه چیزی که خوشمون میاد میگفتیم به به یا وح وح پس بهمن و وهمن بعد یعنی اندیشه نیک که در عوستا وحشت منو یعنی بهترین اندیشه که مخصوص خود اوگرام از دازد. دوم اردیبهشت، بهشت یعنی راستی و درستی همون رایت انگلیسی از این, این کلمات میاد پس اردیبهشت یعنی بهترین راستی شهری بر یعنی شهریاری کل اینها ها پسفند مردانه داره این ها صفت داست. یعنی از شیش صفت سه صفت مردانگی داره خداوند و سه صفت بعدی صفات موانته سپنت آرمیتی یا سپند آرمز یا اسفند یعنی عشق پاک سپنتا یعنی پاک و مقدس آرمیتی دو معنی داره یکی به معنی عشق، یکی به معنی تواضع و فروتنی که ضد آن میگن ترمنش یا تروم امیتی پس اینجا میبینیم سپند آرمز یا اسفند که در قدیم ما جشن اسفندگان میگرفتیم و جشن زنان بود چون مغنث صفت تعمیش داره خورداد یعنی رسایی و کمال و زیبایی این مختص زنه امورداد یعنی بیمرگی یعنی اون زنه که با زاد و ولد خودش نسل خودش رو عبدی میکنه و میبینیم بهمن در برابر استفند قرار می دیده. و در قدیم بهمن روز بهمن و ماه بهمن یعنی جشن بهمنگان جشن پدر و مرد بود و اسفندگان جشن مادر و زن بود و مخصوصا در ماه اسفند جشن اسفندگان اون روز مردها می باستی تمام کار خونه رو انجام بدن و زن ها از کار خونه مواب بودند. صبح مرد با کمک پسرش پسرش یا برادرانش که اگر تو خونه بودند می باستی خونه رو جارو کنن و آب پاشن و بعدن خوراپ پذیر و البته به دستور زن خوراک خوراپ می و از که می شد خانوم آبتنی می و لباس سفید می و جای بلندی میشستند و اول از طرف پدر بزرگ هدیه برای مادر بزرگ و دختراش می آورد و پسرها نوه های دخترش بعدا شوهر هدایای برای زن و دختراش می آورد و در واقع یک روز مردها به درد دل زنها می که چجور زندگی را با زحمت اداره می کنن. پس امروز طبق روز و ماه زردوشیان روز اسفند و ماه بهمنه یعنی هم جشن مادر، هم جشن پدر با هم توامه که البته روز بهمن و ماه بهمن جشن مادر و قدر بود و روز اسفند و ماه اسفند بود. پس می بینیم فرهنگ نیاکان ما بیشتر زندگی من بر شادی و خورمی و جشن و سرود بوده حتی گریه کردن برای مرده ها رو ما گناه میدونستیم، و حتی یک اشخاص محسنن وقتی میمردن مردن در قدیم می بردیم آرامگاه پشت سرشون تار و رباب می و شادروان حافظ این طبق سنت نیاکانش میگه به به تابوتی از چوب تاکم کنید به راه خرابات خاکم کنید مریضید بر قبر من جز شراب نیارید در ما تمام جز رباب ولیکن به شرطی که در مرگ من ننالت به جز مطرب و تارزن چرا؟ برای که مرگ را خدا به ما میده اگر مرگ دادست و بیداد نیست پس از مرگ این داد و بیداد چیست اگر قبول کنیم که هستی و نیستی را خدا آفریده پس باید به داده پروردگار راضی و خوشنود بود و حتی بار زندگی را با شادمانی کرد. و ایرانی وقتی که بعد از زحمات زیاد یک محصول کشاورزی یا یک درآمدی از راه دیگر به دست شادی می شادی می‌کردن دهیکش کش را می‌بخشدند به فقرا و بینوایان که ما اینکه آخر ماه رمضان فطری الان ایرانی میده این رسمی تقریبا مال نیاکانمونه که بعد از طی مراحل زحمت و سختی انسان نه فقط باید خودش شاد باشه، بلکه باید وسیله شادی هم برای دیگران فراهم کنه امیدواریم تا ایران هست حکومت در دست ایرانی و فرهنگ ایرانی مستولی باشه بر کشور و همه ما هم حامل و پیام فرهنگ نیاکانمون باشیم در درجه اول برای فرزندانمون و بعد برای دیگران همونطور که مستحضر هستین پدر خدا بیامرز من آقای داران عرفوز یک شاعر بودن و برای هر کلا کسی مخترع نویسنده شاعر اثر اون میتونه نمود روح اون رو داشته باشه در بین بازماندگان یک تجلیلی از موبد شهزادی عزیز که موبد موبدان هستند و امروز سخنرانی این جلسه رو بر داشتند، داشتن پدرم انجام دادن در زمان حیاتشون که برای شما میخونن موبد شهزادیان آزاد مرد که مقلد امت زرتوشت کرد تابع اوی ما زرتشتیان در همه افاق بسته کشتیان در صداقت جعفر صادق بود در امامت جمله را واسق بود در نماز و در سجود و در رکوع تشنه حق را بود او صد جوب فقه زرتشتی به ایشان زنده هست رو تمه زرتشت را پاینده است. ای که دادی تو شهید راستین باج کی دادی به خانه باشتین تا ابد فرزند پاکت زنده هست داد حقت در جهان پاینده هست ای تو پاپ دین واتیکان ما ای تو راه راست را ایمان ما مؤمن حقی و ایمانت درست مذهب نابی و پیمانت درست ای امام جمعه زرتشتیان ای امین جمله بسته کشتیان نور حق از صدره تو دور نیست فاصلی تا مرز کوه تور نیست مهد دلها از تو نورانی شده صدر پوشان از تو کیهانی شده آیت اللهی تو واقع بحر ما مرجع تقلید ما درده نداه به راه حق جهاد راستین برکند از ریشه خانه باشتین اجنبی در خاک ما بیداد کرد این عراقی ارق ما برباد کرد هم عجم را از عرب بیزار کرد هم عرب را جمله خار و زار کرد اینکه صدام عرب در کار کرد کی به ایران حمله تاتار کرد لیکنه ای ایرانیان خوشنهاد آخر شهنامه خوبی بواد مرجع تقلید ما را مرجعی است که به کشور بهتر از او نیست نیست مرجع اسلام چون تاکید شد مرجع زرتشتیان تایید شد مرجعی تو ما همه راجع به تو خازه تو ما همه خاضع به تو تو بلندی و مقامت ارجمند درد حق داریم و جمله دردمند دردمندان را دوایی موبدا مو موبد ای نور خدا قبله زرتشت از تو زنده هست تا ابد نامت بدین پاینده هست گر تو فتوایی دهی بحر جهاد جملگی در خون بغل ت می اماد تو ستون دین این کاخ از تو است تو ستون دین این کاخ از تو هست قبله زرتشت دین پاینده هست نور از اینجا قبله زرتشت شد که عصای موسوی در مشت شد کعبه ما آتش زرتوشت هست چون خدا نور است و در هر مشت هست آتش حق از بهشت آورد او نور حق امت زرتوشت کو در پی نور خدا جویان شوید. جمله ای زرتوشتیان پویان شوید گر که در, گر که در قلبا به ایسایی کنی، در جهان فرجود موسایی کنی خودشناسی کن خدا از خودشناس یافتی حق ای امام خودشناس تو امام امت زرتشتی صدرپوشان را همه تو کشتی صدرپوش پوش ار جنت شود پرده ابهام از هم باشود غیر حق چون در جهان رسوا شود روزه حق در مثل معوا شود جغد را کی تا نور حق بود مستحق قسطو که مستحق بود باده عرفان کجا تحریم شد مستی حق جملگی تعمیم شد قسط تعمی در کنی می بکن مستحق شو لب ببند از هر سخن لا الهو نیست غیر از او خدا نیست این بنده زان بنده جدا شعبه شعبه کرده پیغمبر تو را این قبیله و قبیله انبیا مرد و زن یکسان نموده خلق او گر شوی انسان تو هستی باز از او موبدا تبریک این تقوای تو رای ما کی هست غیر از رای تو رایزن باشی به فرهنگ غنی دل کجا دادی به دنیای دنی عالم علوا مکان مبد است آیت الله هست و ما را سرمد است ایدون دونم در این جا یک موضوعی مطرح است که آیا ما پیغمبر خود را یک آدم معمولی میدونیم، یا یک کسی که فیض روه القدس هم راش بوده و هر آن به مز اینکه گرفتار سختی و بدبختی می شده او را میرهانیده وقتی به گاتا نگاه می کنیم می بینیم در مثل ما یک آدم معمولی بوده گرسنه می شده، تشنه می شده از آزار شکنجه متعظیم می شده و هر وقتی هم که گرفتار اینجور سختی میشه دست دعا به درگاه پروردگار دراز میکنه همون طوری که الان خواندم میگه به کدا فرار کنم به کجا برم دشمنان مرا آزار و اذیت میکنند و نه فقط مرا اون عده کمی از پیروانم را هم نمیذارن آزاد بگن پس ما وقتی میتونیم پیروی از پیغمبر خودمون را بکنیم که او را مثل خودمون آدم معمولی بدونیم من تا شجاعتر داناتر و دارای عاطفه و احساسات و عقل و خرد فوقالادهی بوده اگر این را قبول کنیم ما میتونیم پیروی از پیغمبر خودمون بکنیم وگرنه اگر به قول حافظ میگه فیض روح القدا سرباز مدد فرماید دیگران هم بکنند اون چه مسیح ها چون در بین مسیح ها راجع به معجزات حضرت مسیح زیاد نوشته شده کور را بینا میکرده مرده را زنده میکرده هر وقتی گرسنه و تشمی میشده سفرپن میشده و نان و شراب و اینا حاضر میشده و این میگفت که از فیض رو قدسه پس ما موقعی میتونیم به گفته پیغمبرمون عمل کنیم که او را هم مثل خودمون آدم معمولی بدانیم. پس این معجزاتی که برای عشدرتوش بعدا درست شد در زمان ساسانیان بود که ما با یک عده از یهودیان و مسیحیان و بوداییاب مزدکی ها و مانوی ها روبرو بودیم و اینها ها عجیب و غریبی برای پیغمبرشون ساخته بودند و نیخون میده سطح فکر ایرانیان در زمان سا ساسانیان در اثر این آموزش های مختلف دینی که در اون زمان رواد پیدا کرد سطح فکر مردم خیلی پایین آمد و بیشتر متوجه این ها و روایات عجیب و غریب بود و نه فقط این بلکه میدونیم که یک عدهای میدونید در زمان شاسانیان معمول بود که میگفتند چون دین رسمی دین زردشتی شده بود و برای اولین بار در بین زردشتیان سیاست و دین توام شده بود و حکومتی به نام حکومت موبتشراهی رواد پیدا می کرد در اون زمان گفته بودند هر کس زردشتی است ما او را فرمانده لشکر می کنیم او را وزیر میکنیم. در نتیجه یه عده از ایرانیانی که هنوز زردشتی نشده بودند مثل مرپرستا، ناهیدپرستا، زروانی ها، اینها ها, این ها در ظاهر آمدن زردشتی شدن ولی در باطن کتاب دینی خودشون آداب و رسوم خودشون وارد دین زردشتی کردن و شما اگر کتاب پهلوی را ملاحظه بفرمایید مثل بندهش دین کرد ماتکان هزار دادستان یا مثلا گیتی مینوخرد، خرد به قدری اقاید زروانی ها توش اون دوازده هزار سالی که زروانه اکرنه و زروانه درخ خداته و اینا معمول کردن که آدم مات میشه که کدون یک کار قبول کنه آیا حرف عشود در توش را در گاتا بپذیره یا اون چه که در زمان ساسانیان متداول شد و بدبختانه در اثر این نوع سیاست باعث شد که مردم مهم پرست بشن تا پیدا کنند و حتی وسواس عجیبی درباره معجزات و تشکیل معجزات برای خودمون هم شدیم و هم در نتیجه لطمه به دین زردشتی خورد و هم لطمه به سیاست حکومت ساسانی که این دو همسر یعنی ترین و سروش لهراس تمام اون صرف آموزش و پرورش نوبابگان زردشتی و ایرانی در ایران صرف کردن به قول یکی از نویسندگان کتاب پهلوی معلمین بهشت برین جایگاهشون هست اینه که در استان می دیم پروردگارا کسی که ما را به راه راست هدایت می کند به جایگاهش باد باز در عوستان یتاوریو میخانیم می خوانیم خشد اهورای آ درگو بیو ددد واس دارم یعنی اهورا مزده از کسی خوشنود است که به کسانی که به این ها رجوع می کنند آموزشی می خواهند مشورتی می خواهند اینها را به خوبی راهنمایی میکند از این جهت آموزگاران و دویران و استادان مقام بزرگی در فرهنگ ایران باستان دارند زمانی بود در ایران که کاغذ و کتاب و چاپخنه و وسایل آمیش بربرش و امروز نبود. زمانی بود که علم سینه به سینه منتقل میشد. یعنی معلم میگفت بچه ها گوش میدادند و حفظ میکردند. وقعا ها علم همینجون سینه به سینه منتقل می شود. و هر قدر اسکندر می اومد کتاب های دینی ما رو می سوزند اعراب می اومدن همین کار میکردند ترک و مغول و چنگیز و تیمون این کار میکردند نمیتونستند فرهنگ ایران را بشکن کنند برای که دوباره علمی که در سینه نهفته بود دوباره روی کاغذ و کتاب می اومد و اولین مدرسهی که باز شد در ایران در زمان توش بود و اون وقت کاغذ نبود و روی پوست می نوشتند و این کلمات دبستان و دبیرستان از کلمه دب و دف یعنی پوسته. وقتی میگن دف میزنند، یعنی بر پوست میزنند. پس دبستان یعنی جایی که روی پوست نوشتن یاد میگیرن. همینطور دبیرستان. و دبیر یعنی نویسنده کسی که روی پوست مینویسد. پس این کلمه دبستان و دبیرستان و دبیر از گفته های زمان عشودرتوشت به زبان پهلوی نوشته شد به زبان عوستا نوشته شد و بعدا به پهلوی تحجیم کردند. ولی علم و دانش در ایران اولین باری که نوشته باقی گذاشته شد عوستا که بعد از عشودرتوشت نوشته شده در هندوستان قوم آریا اولین نوشتهشون کتاب ویدا بود که قدیمترین آنها رید ویدا و در ایران وستا بود و ویدا و وستا هر دو به معنی دانشه من تا بعدا اوستا یعنی عین دانش که اع تحکیدی آ در اوستا دو معنی داره یکی منخیه مثل مرداد یعنی مرگ امرداد یعنی بیمرگی یا گاهی اشتر یعنی یک شطر به خصوصی یک علف اضافه می کنیم پس وستا یعنی دانش اوستا یعنی عین دانش و می دنیم کلمه در انگلیسی و قرآن در عربی هر دو به معنی کتابه قرآن یعنی چیزی که قرائت می از تمام کتاب دینی مذاهب توحیدی چارگانه به معنی علم و دانشه این است که عشوزرتوشت همیشه سفارش میکرد که در هر کاری عقل و خرد و علم و دانش پیش گیرید به طوری که در یسنا چلپند بند هفت میفرماید کسی که طرفدار راستی را خوشنود سازد ها آنکس خویش یا بیگانه باشد یا اینکه یکی از بندگان نیک خدا را در کسب علم و دانش و راه راست زندگی یاری کند چنین کسی در بوستان بهشت خرم و راستی برخوردار سال. این است که در فرهنگ نیاکانمون میگه هر کس نیتش خوبه ولی گفتار و کردارش نتونست خوب کنه این در اولین پایه بهشت یاداره و بهشت مرحله داره اگر کسی نیتش خوبه و جرعتم کرد حرف راست و درست بزنه در درجه دوم بهشته و کسی که نیت و گفتار و کردارش هست خوب باشه در بالاترین مقام بهشت یعنی بهشت گروسمان جایگاهش است. بال در یسنا سیاسه سی میفرماید کسی که با اندیشه و گفتار و کردار با بدی پیکار کرده و با دست و زبان از پیشرفت بدی بکاهد یا یکی از نادانان یا بدکاران را به راه راست و درست رهبری کند چنین کسی خوشنودی اهورامزدا را فراهم ساخته و از یاوران نیکی و خوبی به شمار خواهد رفت. باز در یسنای 43 بندهک می‌فرماید خوشبخت کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد. چنین از فرمان و خواست اهورامزدا از این روی ما خواستاریم که با نیروی راستی و پایداری نیاز یکدیگر را برآورده سازید کدام یک از این دو بزرگتر است آنکه دانا و طرفدار راستی است یا آنکه نادان و به درغ است پس دانا باید دانش خود را به دیگران بیاموزد زیرا شایسته نیست نادان سرگشته بماند بعد در یسناه چلوشش بنده نوزده اشودرتاش توش فرماید کسی که آموزش های مرا به بهترین راه برابر آین مقدس به جا آورد در این جهان بهترین زندگی پاداش او بوده و در سرای دیگر در کشور جاودانی از خوشبختی واقعی برخوردار خواهد بود البته این با این شد که علم و دانش در ایران باستان از وظایف دینی مردم شمرده می شده. و در راه علم و دانش به طوری که ما از بسیار زمان قدیم میدانیم که ایرانیان مثلا رستن در موقعی که مادرش هم داشت و میخواست خواست چون راستن بچه بزرگی بود، بهروش بود، از راه طبیعی متولد نمی‌شد. از این جهت در شاهنامه هم که وزر اون سیمور را خواست و سیمور یکی از معبدان بزرگ بود. میگه بی آمد یکی معبد دست همون ماخرخ را به می کرد، مست، شگافی بیرنج پهلوی ما به تابید مربچه را سر برا چنان بیگزندش برون آوری که کس در جهان این شگفتی ندید و میبینیم قرنها بعد که میگن جون سزار هم تو از امپلاتونان بود به وسیله همون عمل که به نام عمل سزارین معروف متولد شد یکی از دانشمندان ایرانی به نام دکتر نجم آبادی میگه پس ما باید ایرانی ها بگیم این عمل استجاری نیست این عمل رستمیه و ما باید این عمل را به نام ایرانی بخانیم همینطور در علم ستاره شناسی به طوری که میدانید ایرانیان از زمانی جمشید این سال و ماه شمسی را کشف کردند و الان به این سال و ماه کامله که ما میتونیم بگیم در فروز ساعت و فلون دقیقه و فلون سال نوم میشه حتی ده سال دیگه هم میتونیم حساب کنیم ولی هنوز سال قمری که مخصوص عرابه هنوز معلوم نیست اولش که آخرش که ای. حتی پیشگویی هایی که میکنن حتی مسیحی ها میگن تا از مغان ایرانی ستاره مسیح را کلف کرد و, رفت و خانه مسیر را در بیت المقدس پیدا کردند و هدایایی دادن به اونا و به طوری که علمای یونانی مانند افلاطون، ارسطو، ارستو، ارشومیدوز ارستاد همه از علم و دانش ایرانی استفاده می و وقتی به یونان می و می زمانی که به ایران حمله کرد ایران مذهب توحیدی داشت ولی همین یونانی ها مرحله پرستی را می و خدایان زیادی از نر و ماده در آسمان تصور میکردند. این بود که وقتی این دانشمندان یونانی میخواستند به دین توحیدی و آداب و فرهنگ و آین ایرانی را یلوه یونانی های نفهم و نادان حالی کنن اینها رو متهم می به کفر و زندقه یا مجورشون میکردند سم بخورن یا تبعیدشون می یا می و به طوری که می‌دانیم، زمانی که در اواخر ساسانی یک دانشکده بزرگی ما داشتیم در ایران چه در جنوب ایران چه در شمال یعنی نیشابور به خصوص آذربایجان اینها این دانشمندان یونانی که اخراج شده بودند می دریان، در ایران اون علومی که باز از نیاکان ما یاد گرفته بودند به عنوان معلم یاد میدادند و کم کم علم و دانش هندو، و همین دانشمندان یونان ری و روم و مصر وارد ایران شد و دهیم دانشکاده های ایران درد می‌دادند. و به طوری که می‌دانیم بعد از اسلام هم این دانشکاها یک قسمتیش رفت به کشورهای عرب یعنی عراق بود، به خصوص در بغداد و جاهای دیگر و بسیار از علوم ما ایرانی ها حتی وارد دین اسلام هم شد مثلا ما معتقدیم که عقل و خرد و دانش دو جوره یکی آشنود خرد یعنی خرد طبیعی و ذاتی آدم به یکی گوش و سرود خرد یعنی خرد و علم و دانشی که گوش و سرود یعنی سروده شده در گوش و اینه که بعد از اسلام این دو بشمیدن علم معغول و منغول یعنی علم منغول یعنی نقل شده در گوش همون گوش و باز ما در ایران باستان اعمالی که میکنیم ام از خوب و بد به, سه قسمت به چار قسمت به چهار قسمت تقسیم میشه اول شایست شا و نابایست بایست به عربی شد اون واجب نابایست شد حرام باز شایست و ناشایست شایست یعنی مستحب ناشایست یعنی مکرو و می بینیم تمام اون آموزش های دینی ما وارد دوباره فرهنگ ایرانی و مذهب به خصوص شد ایرانی مسلمان شد گروهی ولی ایرانی عرب نشد و در تمام دوره حکومت بن و بن عباز ایرانی ها بر علیه اعراب می جنگیدند مثل زیدیه، قرمتیه، بابکیه، اشعریه و خود امامیه نو روز که پیش آمد اونهای که مسلمان شدن گفتن اه ما دین عوض کردیم ولی خدا و طبیعت عوض نشده بیبینین دوباره مثل صابق بهار آمد، هوا معتدل شد، درختان شکوفه کردند، زمین شروع کرد به زایمان گل و بوته و درخت. پس خدا و طبیعت مهمتره دوباره نووی آورده شد در اسلام جشن عید سال، نهلها می ارگان جشن نیمه سال بود، و شادی جشن پایان سال که بعد تبدیل شد به چهارشنبه سوری. پس می‌بینیم فرهنگ ایرانی مذهب اسلام را یک ای داد که تونست بعدا به وسیله دیگران به هندوستان و هندوچین و اینا میرد و است که به قول شادروان استاد پول میگه ظلم و بیداد فراوان و گرزین دیدین ملک. یارشو اسکندر یارشو حمله اسکندر دون دیدین مرک دشت هامون ز عرب قرغه به خون دیدین مرک ظلم ز زندازه برون دیدین مرک گنبد و کاخش زاسیب نلرزی در کن یعنی ارکان و پایی گنبد و کاخ فرهنگ و تمدن ما با وجود حمله بیگانه از به نرب و ما گرچه مغلوم بیگانگان می شدیم ما با فرهنگ خودمون بیگانگان را مغلوب میکردیم حتی یکی از خلفای عرب میگه ایرانی ها هزاران سال حکومت کردند بدون این که یک روز از ما عرب ها استفاده کنند یا کمک بخوان ولی ما عرب ها یک روز بدون کمک ایرانی ها نتونستیم حکومت کنیم و میبینیم دوباره دربار خلافای بنی اومیه و بنی عباس را ایرانی ها مثل دربار شاسانی برغلاف کردند. پس امیدواریم و ایمان داشته باشیم که فرهنگ ایرانی تا هنگامی که پایبند اصول دین و فرهنگ خودمون هستیم از دین نخواهد رفت و علت این که پروردگار ما را زنده نگه داشته برای این که بتونیم این نیاز فرهنگی خود را به نخلهای آینده بدهیم و فرهنگ آین ایران رانیان را همیشه زنده و جاوید میره داریم کم کم مفیق استفاده از آتش را یاد گرفتند آمدند هر جا دهی محله که میخواستن بسازند اول در وسط آتش کده می ساختن و دورش خونه ها و مغازه های مردم برای که اون زمان کبریت پیدا نشده بود وسیل آتش زنه نبود و آتش مو مدام نگه دارن. حالا صبح که میشد مردم می از آتش کده. آتش می خونه عجا روشن میکردن تنور روشن میکردن کوره روشن میکردن و امور مردم میگذرد بعدا کم کم از اون جایی که هر چیزی که مفید میشه است در نظر مردم مثلا ما در ایران میبینیم این ماه محرم میمیشه بازار ظرف آب تو کوچه برای استفاده مردم شب که میشه مردم میرن شام روشن میکنن دخیل میبندن مراد و مطلب خودشون میخوان این بشک آب, آب که کاری نزیش نمیاد ولی چون مفید بود این را مردم به حالت تقدیز نگاه میکند پس آتشکده چون مفید بود شد مقدس. بعد کم کم که سواد و علم و اینا پیش آمد اولین مدرسه در آتشکده ساخته شد اولین کتاب در اونجا اولین اداره اوقاف اولین اداره دادگستری هر اداره که بشر اون روزه لازم داشت در خود آتشکده ساختن چون از راه دور بچه ها می درس می چون مدرسه بود بالاش جه های برای طلاب و اینا درست کردن بالخونه ها که اقامتگاهشون باشه. باشن در وسط حیات آتشکده ها همیشه یک منار بلندی که پلش از بیرون بود و شب که میشد اون بالا آتش روشن شمی کردن که از دور راهنمای کاروان ها باشه برای که قدیم جاده ها و مینا مرتب نبود و مردم اغلب گمراه می شدن راه را عوضی می و می بینیم همین منوره بلند که میسازیم و شب آتش روشن میکردیم قدیم حالا در حسینیه ها و حسینیه یک تیر بلندی چراغ اون بالا روشنه که اون از اطراف ببینن و مردم بگن که مثلا ده این طرفه ببین چراغ حسینی ها روشنه و این راهنمای مردم بود. بعدا، این ایرانی ها این مناری که بالاش آتش روشن میکردیم، بهش میگفتیم آتشگاه بعدا به عربی شد منار نار یعنی آتش منار یعنی جای آتش و اینان بعد از اسلام عرب ها که میخواستند آتش قد خاموش کنن ایرانی ها می نه خاموش نکنید اگر میخوایید قبل را عوض کنیم، برای که این آتشکده از پول پدر و مادر و جلد آبای ما ساخته شد، این که خراب میکنید شما که بلد نیستید دوباره بسازید اون وقت ایرانی اینن این ساختمان آتش کده را حفظ کرد منت قبل را متابق قبل اسلام قرار داد. و منار هم که در وسط قرار داشت و موقع جاشنای نوروز و مرگان و صده و اینا دور اون مناره اصدوانی و ورزش قهرمانی و عملیات جنگی و اینا میکردن برای تمرین جوانان بعدا اون منار وصل شد بعد از اسلام به خود ساختمان